کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانهی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده حلقه جادویی. روزی، روزگاری، زن و شوهر پیری یه پسر به اسم مارتین داشتن وقتی عمر پیرمرد به پایان رسید رو تختش دراز کشید و مرد با اینکه او در تمام عمرش کار کرده بود و زحمت کشیده بود اما فقط دویست دو سکه نقره برای همسر و پسرش به ارث گذاشت پیر زن تصمیم گرفت پولها رو برای روز مبادا ذخیره کنه اما افسوس روز مبادا خیلی نزدیک بود چون غذای اونها تموم شده بود و اما هیچ کس هم حاضر نیست دویست سکه در خونه داشته باشه و باز هم گرسنگی بکشه به همین دلیل پیرزن صد سکه به مارتین داد و گفت به شهر بره و غذای سال آیندهشون رو تهیه کنه مارتین براه افتاد و وقتی به قصابی رسید دید اده زیادی جمع شدند و میونه سروس دو داده فریاد خشمگین اونها پارسی یه سک هم به گوش میرسه او جلو رفت و دید قصابها ها یه سگ شکاری رو به ستونی بستند و رحمانه شلاقش میزنند. دل مارتین به حال حیوان سوخت و از قصابها پرسید آقایون چرا این سگ بیچاره رو کتک میزنید؟ اونها جواب دادن هر چقدر کتک بخوره حقشه. او همین چند لحظه پیش مقداری از گوشتای تازه ما رو خورد. مارتین گفت این سگ رو به جای کتک زدن به من بفروشید. قصابها با با گفتند. ما موجود ارزشمندی رو کمتر از صد سکه نقره نمیفروشیمش. مارتین گفت «صد سکه؟ خب حتما قیمت اون همینه. بعد پولو از جیبش بیرون آورد و به اونها داد و سک رو که اسمش شورکا بود تحویل گرفت. وقتی مارتین به خونه رسید مادرش به استقبالش اومد و پرسید چه چیزایی خریدی؟ مارتین به حیوان اشاره کرد و جواب داد این سک رو خریدم که اسم شورکاست. مادرش خیلی عصبانی شد و سرش فریاد زد. او باید از خودش خجالت بکشه که وقتی غذای کافی در خونه نیست پول رو بابت خرید چنین موجود مصرفی خرج کرده. روز بعد زن دوباره اونو راهی شهر کرد و گفت این همه پول ماست. اونو بگیر و از شهر آذوقه بخر. من با آخرین دونه های جو کمی نوم پختم. ولی برای فردا دیگه هیچ غذایی نداریم. همین که مارتین وارد شهر شد. چشمش به دهقان خشمگین افتاد که تنابی را دور گردن یه گربه بسته بود و حیوون بدبخت را به دنبال خودش میکشید. مارتین فریاد زد. صبر کن. این گربه بیچاره را کجا میبری؟ مرد جواب داد. میخوام خفش کنم. مارتین گفت. مگه این بیچاره با تو چیکار کرده؟ دهقان جواب داد یک غاز رو کشته. مارتین با التماس گفت اونو خفه نکنه به من بفروش. مرد جواب داد قیمتش 100 سکه نقره است. مارتین گفت دقیقاً صد سکه نقره. خب بیا اینم پولش. او صد سکه نقره رو به مرد داد و دهقان اونو در جیبش گذاشت. مارتین هم صاحب گربهی شد که نامش واسکا بود. وقتی به خونه رسید و مادرش به استقبالش اومد و پرسید خوب چه چیزایی خریدی؟ مارتین جواب داد. من این گربه رو که اسمش واسکاست خریدم. دیگه چی؟ مارتین جواب داد. دیگه پولی برام نمون تا چیز دیگه ای بخرم. مادرش با عصبانیت فریاد کشید. تو به هیچ دردی نمیخوری؟ فوری از خونه برو بیرون و خودت خرج غذا تو در بیار. مارتین که جرأت نداشت نفرمونی کنه شورکا و واسکا را صدا زد و برای پیدا کردن کار به طرف نزدیکترین روستا رفت. در بین راه دهخان ثروتمندی رو دید. مرد از او پرسید که کجا میره؟ پسر جواب داد میخوام یه جایی کارگری کنم. پس با من بیا. البته من به کارگرام روزانه مز نمیدم. اگه تو یک سال برای من خوب کار کنی قول میدم ضرر نکنی و مزد خوبی بگیری. مارتین قبول کرد و یک سال تمام خیلی خوب برای اربابش کار کرد بدون اینکه به اندازه کافی استراحت کنه. وقتی روز پرداخت حقوق فرارسید، رسید دهگان اونو داخل یه انباری برد و به دو کیسه اشاره کرد و گفت هر کدوم رو که میخوای بردار. مارتین داخل کیسه ها رو نگاه کرد و دید یکی از اونها پر از نقره و دیگری پر از شنه او با خودش گفت حتما یک کلکی در کاره بهتره که کیسه شنو بردارم سپس در حالی که کیسه را رو دوشش انداخته بود بیرون رفت تا کار جدیدی پیدا کنه او رفت و رفت تا اینکه به جنگل بزرگ و تاریکی رسید وسط جنگل به چمنزاری رسید که آتیشی در آن روشن بود و زیباترین دختری که مارتین تا به حال دیده بود میون شعله های آتیش محاصره شده بود. وقتی چشم دختر بهش افتاد گفت مارتین اگر میخوای همیشه موفق بشی جون منو نجات بده. شنهایی رو که به جای دست یک سال کار گرفته ای روی آتیش بریز و شعله ها رو خاموش کن. مارتین با خودش فکر کرد بله آقلانه ترین کار اینه که به جای اینکه سنگینی این شنها را رو پشتم تحمل کنم با کمک اون جان یک نفر رو نجات بدم او جلو رفت و کیسه رو از روی شنش به زمین گذاشت و محتویات اون رو روی شولاها خالی کرد آتیش فوری خاموش شد اما همون موقع اتفاق عجیبی افتاد دختر زیبا تبدیل به یه مار شد به طرف پسر پرید دوره گردنش حلقه زد و با لحن دوستانهی گفت از من نترس مارتین من تو رو دوست دارم و هر جا که بری با تو خواهم اومد اما اول باید به سرزمین پدرم که در زیر زمین است بیای یادت باشه وقتی اونجا رسیدیم او به تو طلا و نقره و جواهرات قیمتی هدیه میده اما تو نباید به اونها دست بزنی. در عوض از او بخوا حلقه ای را که در انگشت کوچیکش هست به تو بده چون اون حلقه قدرت جادویی داره و کافیه که اونو از یه دست در بیاری و توی دست دیگر بذاری اون وقت دوازده مرد جوان ظاهر میشن که همه دستورات تو رو هر چقدر هم که سخت باشه یک شبه انجام میدن اونها به راه افتادند پس از مدتی به صخره بزرگی رسیدن که وسط راه سر به آسمون کشیده بود مار خودشو از دور گردن پسر باز کرد و به محض اینکه رو زمین مرطوب قرار گرفت دوباره تبدیل به دختری زیبا شد او به صخره اشاره کرد و شکافی رو نشون داد که یک نفر به میتونست از اون رد بشه بعد از وارد شدن به شکاف اونها به یه راهروی دراز زیرزمینی رسیدند که در انتهای اون دشت پهناوری قرار داشت و بر پراز اون ابرهای سفید در آسمون آبی به این سو و اون سو میرفتند در وسط این دشت قلعه با شکوهی قرار داشت که با سنگهای درخشان ساخته شده بود و روی سقف طلاییش برجهای بلندی دیده میشد دختر زیبا به او گفت که پدرش اونجا زندگی میکنه حاکم دنیای زیرزمینه اونها با هم وارد قصر شدن و پادشاه با خوشرویی هر دو را پذیرفت و رو به دخترش کرد و گفت فرزند عزیزم من دیگه امیدم رو برای دیدن دوباره تو از دست داده بودم این همه سال کجا بودی دختر جواب داد پدر من زندگیم و مدیون این جوون هستم او منو از مرگ نجات داد با شنیدن این حرف پادشاه رو به مارتین لبخند زد و گفت در جواب این شجاعت تو من هرچه که بخواهی به تو خواهم داد هرچقدر طلا و نقره و جواهر میخوای با خودت ببر مارتین جواب داد ای پادشاه قدرتمند من از محبت شما ممنونم اما من نه طلا نه نقره و نه جواهر میخوام اگه میخواید لطفی به من بکنید خواهش میکنم حلقه ای را که در انگشت کوچیکتون هست به من بدین هر وقت که چشمم به اون بیفته خاطره شما برام زنده خواهد شد و بعد از ازدواج اون رو به همسرم هدیه خواهم داد. به این ترتیب پادشاه حلقه رو از انگشتش بیرون آورد و به مارتین داد و گفت مرد جوان اینو بگیر ولی به تو پیشنهاد میکنم به کسی نگویی که این حلقه قدرت جادویی داره. چون مطمئنم اگر چنین کاری بکنی بیچاره میشی. مارتین حلقه رو گرفت و از پادشاه تشکر کرد و از همون راهی که اومده بود از زیر زمین بیرون اومد. او به طرف خونه قدیمی پیش مادر پیرش برگشت و در کنار او به زندگیش ادامه داد. زندگی اونها مثل گذشته پیش می رفت و مشکل چندونی نداشتند. اما یه روز ناگهان فکر ازدواج به سر جوون افتاد و تصمیم گرفت همسر خوبی انتخاب کنه. کسی که مثل دختر پادشاه. اما چون خودش نمیتونست به خواستگاری بره تصمیم گرفت مادرش رو برای این کار بفرسته. او به پیرزن گفت تو باید پیش پادشاه بری و ازش خواهش کنی اجازه بده من با دخترش ازدواج کنم. پیرزن که باور نمیکرد درست شنیده باشه گفت این چه حرفیه که میزنی پسرم؟ چرا کسی رو که مثل خودمونه برای ازدواج انتخاب نمی کنی؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد. که پیرزن فقیری مثل من رو به عنوان خاستگار به دربار پادشاه بفرستی تا یه شاهزاده خانم رو برات خاستگاری کنه. چنین تقاضایی از سرمونم زیاده. اگه من چنین پیغام احمقانه ای رو به گوش اونها برسونم ممکنه هر دوی ما جونمون رو از دست بدیم. مارتین جواب داد: نترس در عزیزم. به من اعتماد کن هیچ اتفاق بدی نمیفته. برو یادت باشه بدون جواب مثبت برنگردی. به این ترتیب پیرزن حرف پسرشو گوش کرد و راهی قصد شد بدون اینکه کسی مانش بشه. وارد دربار شد و شروع کرد به بالا رفتن از پله‌هایی که به اتاق پادشاه می‌رسید. ای از درباریان که با های مجلل اونجا ایستاده بودند به او خیره شده بودند و با محبت به پیرزن غریبه نزدیک شدند و براش توضیح دادند که بالا رفتن از این پلکان ممنوعه. اما هشدارها و تذکرهای اونها هیچ تأثیری رو پیرزن نذاشت. او برای انجام خواسته پسرش به راهش ادامه داد. درباریان که این وضعیت را دیدن دستای اونو گرفتند و به زور اوو برگردوندن. با این کار پیرزن چنان جیغی کشید که پادشاه با شنیدن اون به بالکن اومد تا ببینه چه اتفاقی افتاده. بعد چشمش به پیرزن افتاد که برای آزاد کردن و خودش تقلا میکرد. کرد و فریادکنان میگفت تا پیغومشو را به گوش پادشاه نرسونه از قصر بیرون نمیره. وقتی پادشاه این صحنه را دید دستور داد پیرزن را به حضور او بیارن. پیرزن را به تالاری بردن که تخت سلطنتی در آن قرار داشت و پادشاه روی او نشسته بود و به بالش های بنفش سلطنتی تکیه داده بود و مشاوران و درباریانش هم اطرافش ایستاده بودند پیرزن تعظیمی کرد و ساکت ایستاد پادشاه پرسید خب بانوی محترم چه کاری از دست من برمیاد؟ مادر مارتین جواب داد من اومدم که حضرت خواهش میکنم از دست من عصبانی نشی من برای خواستگاری از دخترتون به اینجا اومدم پادشاه با عصبانیت فریاد زد آیا این زن عقلش رو از دست داده اما مادر مارتین با شجاعت جواب داد اگر پادشاه کمی صبر داشته باشه و به حرفای من با دقت گوش بده متوجه میشه که من عقلمو از دست ندادم ای پادشاه شما دختری دم بخت دارید من هم یه پسر دارم که خاستگار اوست. پسرم جوون و باهوش و بهترین دامادی است که شما میتونید در سرزمینتون پیدا کنید. هیچ کاری نیست که او نتونه انجام بده. حالا ای پادشاه راقا پووسکننده بگویید آیا دخترتون رو به پسر من میدید؟ پادشاه با شنیدن جمله آخر صورتش از خشم سرخ شد و چهرش لحظه به لحظه عبوستر میشد. اما یه لحظه با خودش فکر کرد من پادشاه هستم درست نیست از حرفهای این پیرزن فقیر عصبانی بشم بعد همه درباریان و مشاوران با تعجب متوجه شدند اخم صورت پادشاه باز شد و با لحنی آروم اما تمسخرآمیز به پیرزن گفت اینطور که تو میگویی پسرت خیلی باهوش و هر کاری از اهدش بر میاد. پس به او بگو باید تا 24 ساعت دیگه روبروی قصر من یک قصر باشکوه بسازه. قصر باید به وسیله یه پل شیشه‌ای به قصر من وصل بشه. دو طرف پل باید پر از درختهایی با سیب‌های طلایی و نقره‌ای باشو پرنده‌های بهشتی روی اون پرواز و آواز بخونند. در سمت راست پل باید یک کلیسا ساخته بشه در این کلیسا پسر تو با دختر من ازدواج خواهد کرد و جشن عروسی را هم در قصر جدید برگزار خواهیم کرد اما اگر نتونه این فرمان سلطنتی رو اجرا کنه من دستور خواهم داد که هم او و هم تو را اول در غیر و بعد در پرفرو کنند و بعد برای تفریح مردم در میدان شهر اعدامتون کنند با تمام شدن این حرف لبخندی رو لبهای پادشاه نقش بست درباریان و مشاوران با خنده سرتکون دادند و به یک دیگر گفتند هر وقت از کف دست مو در اومد اون پسر میتونه چنین کاری رو در 24 ساعت انجام بده. تماشای اون دو نفر وقتی پرها به غیرهای بدنشون چسبیده چقدر خندهدار خواهد بود و اما پیر زن بیچاره که خیلی ترسیده بود با صدایی لرزون پرسید آیا خاصی شما واقعا اینه ای پادشا؟ یعنی من باید چنین پیغامی رو برای پسر بیچارم ببرم؟ بله خانم، دستور من همینه. اگه پسرت موفق شد، اون رو اجرا کنه، دختر منو به دست خواهد آورد. وگرنه هر دوی شما همون طوری که گفتم مجازات خواهید شد. پیر بیچاره در راه خونه مثل ابر بهار اشک میریخت. وقتی مارتین رو دید، همه چیز رو براش تعریف کرد و نالکنان کنان گفت دیدی به تو گفتم بهتره با کسی مثل خودت ازدواج کنی؟ اگه به حرف من گوش می کردی الان این بلا سرمون نمی اومد. رفتن من به قصر سر هردوی ما رو به باد خواهد داد و حالا هر دوی ما با اون قیافه های مسخره در میدون شهر اعدام خواهیم شد وحشتناکه بعد شروع به شیون و زاری کرد مارتین جواب داد نترس ترس در عزیزم با خیال راحت بخواب. سپس مارتین به جلوی کل برفت. حلقه را از یک دستش به دست دیگش داد. ناگهان دوازده مرد جوون ظاهر شدند و پرسیدند چه کاری باید انجام دهند؟ مارتین دستور پادشاه را براشون توضیح داد و اونها گفتند تا فردا همه چیز طبق دستور پادشاه اجرا خواهد شد. صبح روز بعد وقتی پادشاه بیدار شد، به کنار پنجره رفت و با تعجب قصر باشکوهی را دید که درست روبروی قصر خودش بود و با یه پل شیشهی به قصر پادشاه بحث شده بود. در دو طرف پل درختهایی با میواهای طلا و نقره قرار داشت و پرنده های بهشتی در لابلای شاخه هاشون آواز میخونند. در سمت راست ساختمون کلیسا زیر نور خورشید میدرخشید و صدای ناغوز ها انگار همه مردم دنیا را برای تماشا دعوت میکرد. پادشاه که فکر میکرد امروز قرار یه مراسم اعدام و تماشا کنه مجبور شد به فکر سور و سات عروسی بیفته. او به قولش وفا کرد. به مارتین عنوان دوک و برای دخترش جهیزیه ارزشمندی تهیه کرد. بعد چنان جشن باشکوهی برگزار کرد که تا سالها بعد مردم در موردش حرف می زدن و از اون تعریف می کردن. بعد از جشت مارتین و همسرش زندگی خودشون رو در قصر باشکو شروع کردند و این زندگی به قدری راحت و مجلل بود که مارتین هیچ وقت تصورش رو هم نمی کرد. با اینکه او خیلی شاد و رازی بود اما دختر پادشاه همیشه هرس می خورد و فکر می کرد با این ازدواج بهش توهین شده چون به جای یه شاهزاده پسر اون پیرزن فقیر همسرش شد به همین خاطر شب و روز قصه می خورد و فکر می کرد چطور میتونه از دست این شوهر نامناسب نجات پیدا کنه او تصمیم گرفت از راز مرد سر در بیاره و با محبت و چابلوسی سعی کرد اونو به حرف بیاره و بگه چطور میتونه از اهده هر کاری بر بیاد مرد هیچ چیز رو لو نداد اما یه بار دختر با حرف های شیرین خودش اونو کاملا مجذوب خودش کرد و بعد یه معجون قوی و شیرینی بهش داد. وقتی مارتین معجون رو نوشید لب باز کرد و به دختر گفت که همه ی نیروی جادویی او به خاطر حلقهیه که در انگشتش هست و توضیح داد که چطور میشه از اون استفاده کرد و همونطور که داشت حرف میزد به خواب عمیقی فرو رفت وقتی دختر متوجه شد معجون اثر کرد و مرد به خواب رفته حلقه جادویی رو از انگشت شوهرش بیرون آورد و به حیات قصر رفت و اون رو از یه دستش به یه دست دیگه داد. همون لحظه دوازده مرد جوون ظاهر شدند و پرسیدند چه کاری باید انجام بدن؟ دختر توضیح داد که اونها باید تا فردا صبح قصر و پل و کلیسا رو ناپدید کنند و به جای اونجا کلوهی ای را که مارتین قبلا در اون زندگی می کرد قرار بدن. بعد قبل از اینکه شوهرش بیدار بشه اونو به اتاق قدیمیش منتقل کنند. بعد از اون باید شاهزاده خانم رو هم به دورترین نقطه کره زمین ببرند. در اونجا یه پادشاه پیر زندگی میکنه که اونو میپذیره و در حد یه شهزاد خانم ازش پذیرایی خواهد کرد. دوازده جوان یک صدا گفتند دستور شما اجرا خواهد شد. همینطور هم شد. صبح روز بعد وقتی پادشاه بیدار شد و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. حیرت زده متوجه شد قصر، پل، کلیسا و همه درختها. ناپدید شدند و در اون محل فقط یه کلبه نیمه ویرون و قدیمی دیده میشه. پادشاه فوری دامادش رو احزار کرد و از او خواست همه چیز توضیح بده. اما مارتین فقط به پدرزنش نگاه کرد و یک کلمه هم حرف نزد. پادشاه عصبانی شد. دادگاهی تشکیل داد و او به خاطر جادوگری و فریب دادن پادشاه و از بین بردن شاهزاده خانم گناهکار شناخته شد. پادشا دستور داد اونو بالای برد زندانی کنند و اونقدر بهش آب و غذا ندن تا از گرسنگی و تشنگی بمیره. موقعی که دیگه رمق نداشته خیلی ضعیف شده بود دوستای قدیمیش یعنی همون سگ و گربه که یادشون نرفته بود مارتین چگونه اونها رو از مرگ نجات داد با هم مشورت کردن تا ببینن چطور میتونن بهش کمک کنن. شورکا با خشم قرید و, و گفت دلش میخواد همه رو تکه تک میومیو میو کرد و با پنجه پشمالوش پشت گوشش و خاروند و به فکر فرو رفت. بالاخره بعد از چند دقیقه فکری به ذهنش رسید و رو به شورکا کرد و گفت بیا با هم به شهر بریم. به محصی این که یه نون وادیدم تو خودتو به پاهاش بکوب تا ببینی نون از رو سرش بیفته. اون وقت من چند قرص نون رو بر میدارم و با هم اونو برای صاحبمون میبریم. فرصت را نباید از دست بدیم اون دو حیوان وفادار به طرف شر دویدند و خیلی زود مرد نون فروشی رو دیدن که یه سینین نون آماده رو سرش گذاشته بود و فریاد میزد نونای تازه، کیکای شیرین، همه نون نون بیاید بخرید، بیاید و ببرید، مطمئن باشید و پشیمون نمیشید در یه لحظه شورکا خودشو به پاهای مرد کوبید نونوا زمین خورد و سینیش واژگون شد. نونا رو زمین ریختند و در مدتی که مرد با عصبانیت دنبال شورکا میدوید، واسکا نونا رو پشت بوتهای پنهون کرد. یه دقیقه بعد شورکا هم پیشش اومد. اونا با هم با تمام سرعت به طرف برج سنگی که مارتین در اون زندانی بود، رفتند تا نونها رو بهش برسونند. واسکا که خیلی زرنگ بود، از دیوار بالا رفت و خودشو به پنجره رسوند و صدا زد قربان حالتون خوبه؟ مارتین با صدای ضعیف پاسخ داد هنوز زندم ولی چیزی نمونده از گرسنگی بمیرم اصلا فکرشو هم نمی‌کردم که روزی از گرسنگی بمیرم باسکا گفت اصلا نترسید ارباب عزیز من و شورکا موازه به هستیم بعد پایین رفت و یه تیکه نون براش آورد بعد یه تیکه دیگه و اونقدر به این کار ادامه داد تا همه نونا رو به مارتین داد. بعد گفت ارباب عزیز من و شورکا میخوایم به دورترین نقطه روی زمین بریم و حلقه جادوی شما رو براتون بیاریم. شما باید مواظب باشید تا برگشتن ما نونا تموم نشه. واسکا از ارباب عزیزش خداوزی کرد و همراه شورکا سفرشون رو شروع کردهاند. اونها پیش می رفتند و همه جا به دنبال رد پای از شاهزاده خانم می گشتند. از سگ و گربه ها سآل می کردند و به حرفهای همه مسافرها گوش میدادند. بالاخره فهمیدند به سرزمینی که دورترین نقطه زمین قرار داره و دوازده جوون شاهزاده خانم رو به اونجا بردند نزدیک شدند. سرانجام اونها به اون سرزمین رسیدند. فوری به قصد رفتند و با همه سگ و گربه های اونجا دوست شدند و از اونها درباره شاهزاده خانوم و حلقه جادویی سوال کردند اما هیچ کس چیز زیادی در این مورد نمیدونست تا اینکه یه روز که واسکا برای شکار موش به زیر زمین رفته بود چشمش به موش چاق و چله افتاد دنبالش دوید و با پنجه های تیزش اونو گرفت و میخواست غورتش بده که جونور کوچیک شروع به التماس کرد و گفت اگه منو آزاد کنی هر کاری که از دستم بر بیاد برات انجام میدم چون من پادشاه موش ها هستم و اگه کشته بشم نسلمون از بین خواهد رفت فاسکا گفت اگه اینطوره من تونو آزاد میکنم اما در عوض تو باید کاری برای من انجام بدی در این قصد شاهزاده خانومی زندگی میکنه که همسر بیرحم ارباب منه او حلقه جادوی عربابم و, و تو باید به هر قیمتی شده اونو پس بگیری. شنیدی؟ تا وقتی که افراد تو این ماموریت رو تموم نکردن من تو رو آزاد نخواهم کرد. موش شباب داد قبوله. من خواسته تو رو انجام میدم. بعد همه موشای های سرزمینش رو احزار کرد. تعداد بیشماری موش کوچک و بزرگ قهوه‌ای و خاکستری اونجا جمع شدن و دور پادشاهی خود که در پنجه واسکا اسیر بود حلقه زدند او رو به موش‌ها کرد و گفت افراد عزیز و وفادارم هر کدوم از شما که بتونه حلقه جادویی رو از شاهزاده خانم تازه وارد بدزده منو از یه مرگ وحشتناک نجات خواهد داد و من به او بالاترین مقام خواهم داد همون موقع یه موش کوچیک جلو اومد و گفت من معمولا شبا به اتاق شاهزاده خانم میرم و متوجه شدم که او حلقه ای داره که مثل چشماش از اون مراقبت میکنه. او تمام روز اونو به انگشتش میندازه و شبا تو دهنش میذاره. قربان من قول میدم حلقه رو براتون بیارم. موش کوچیک به اتاق خواب شاهزاده خانم رفت و تا شب همونجا منتظر مون. وقتی شاهزاده خانم به خواب رفت او روی تخت دختر رفت و بالشش و جوید و چند پر از اون بیرون کشید و اونو زیر بینی شاهزاده خانم گذاشت. پرایه توی بینی و دهان دختر که رفتند او شروع کرد به عطسه کردن و حلقه از داخل دهانش روی پتو افتاد. موش کچولو مثل برق پرید اونو برداشت و برای واسکا برد تا پادشاه موشا آزاد بشه. به این ترتیب واسگاه شورکا که به هدفشون رسیده بودند راه برگشت رو در پیش گرفتند و شب و روز به راهشون ادامه دادند. تا به برج سنگی که مارتین در اون زندانی بود رسیدند. گربه از دیوار بالا رفت و خودشو پشت پنجره رسوند و صدا زد مارتین ارباب عزیز، حالتون خوبه صدایی ضعیفی پاسخ داد. آه واسکا! گربه یک وفادار من خودت هستی؟ من دارم از گرسنگی میمیرم. سه روزه که لب به غذا نزدم. باسکا جواب داد. خوشحال باشید با عزیز. از امروز به بعد زندگیتون پر از شادی و آرامش خواهد بود. میخوام یه معما از شما بپرسم. حدس بزنید من و شورگاه براتون چی آوردیم؟ فکرشو بکنید. ما حلقه شما رو آوردیم. با شنیدن این حرف مارتین نزدیک بود از خوشحالی سکته کنه. او بالا و پایین پرید و جیغ کشید و گربش و ناز و نوازش کرد همون موقع شورکا هم پایین برج جست و خیز میکرد از خوشحالی پارس میکرد بعد مارتین حلقه رو گرفت اونو از یه دست به دست دیگاش قرار داد و فوری دوازده مرد جوون ظاهر شدند و پرسیدم باید چیکار کنن؟ گفت خیلی زود برام خوردنی و نوشیدنی بیارین و بعد یک گروه موزیک به اینجا بیارید تا کمی موسیقی گوش بدیم و شادمانی کنیم وقتی مردم شهر و ساکنان قصر صدای موسیقی رو از برج شنیدند خیلی تعجب کردند و سراغ پادشاه رفتن و خبر دادند که برج مارتین جادو شده چون به جای این اینکه او از گرسنگی بمیره مشغول شادی کردن و گوش دادن به موسیقی هست و زندان صدای به همخوردن بشقاب و لیوان و چنگال و چاقو میاد و موزیکی که پخش میشه به قدری سهرنگیزه که همه آبران برای گوش دادن به اون پای برج جمع شدن. پادشاه با شنیدن این خبر فوری قاسدی رو به زندون برج فرستاد و قاسد به قدری مجذوب شد که همونجا موند و برنگشت. پادشاه رو فرستاد اما اونها هم همونجا خشکشون زد بالاخره خود پادشاه به اونجا رفت و موسیقی دلانگیز برج اونو هم از خود بیخود کرد بعد مارتین دوازده جوون رو احضار کرد و به اونها گفت قصر منو دوباره بسازید و اونو با برج شیشهای به قصر پادشاه وصل کنید براموش نکنید که درختها با میوه های طلا و نقره هم باید سرجاشون برگردند و پرنده های بهشتی رو هاشون آواز بخونن. کلیسا را هم سرجاش برگردونید و ناغوز به صدا در تا مردم از هر چار گوشه این سرزمین اینجا جمع بشن. یه موضوعی دیگه همسر بیوفای منو برگردونید و اونو به اتاق مخصوصش ببرید. دستورات او اجرا شد و مارتین دست پادشاه یعنی همون پدرزنش رو گرفت و با هم به قصر جدید رفتند. شاهزاده خانم هم اونجا بود و از ترس میلرزید و منتظر مرگ بود. مارتین رو به پادشاه کرد و گفت: ای پادشاه و پدر عزیز، دختر شما خیلی منو آزار داد. به نظر شما چطور باید تنبیه بشه؟ پادشا به آرامی جواب داد ای شاهزاده زاده و دا ماده محبوبم اگر منو دوست داری بزار خشمت تبدیل به محبت بشه. دختر منو ببخشو عشق اونو دوباره تو قلبت جا بده. مارتین آروم شد و همسرشو بخشید. از اون به بعد با خوشی در کنار هم زندگی کردند. مادر پیرش هم برای زندگی پیش اونها اومد و او هرگز از شورکا و واسکا جدا نشد در زم حلقه را هم هرگز از جلوی چشمش دور نکرد کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی نقط دی نشانی وبلاگ ما نشانی وبلاگ ما میهراندوستی مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بستانی